این راهانیه امروز اومده بود پیش من میگفت پدر من میخوام بمونم رام انقدر منو نفرست برم تهران اونجا همش باید با این خامنه و دارو بریش کل کل کنم دکه طاقتم داره تموم میشه اش گفتم عجله نکن اگه مثل اون خاتمیه ممنون خروجت نکردن یه کاری میکنم بعد از رئیس جمهوریت بیای روم تو دفتر خودم خوشحال شد گفتم ولی حالا پر رو نشو اون پولایی رو هم که به عنوان هدیه آوردی به بربریز به حسابم دیگه ایرانیا مشکلی ندارن بعد از این یارو برجامه من هم دیگه پول نقد قبول نمی کنم به کمی دمخ شد گفت حاصله یک کاره بانکی ندارم ده بانکای روم رومم مثل بانکای ایران صفیه من از مونده تا را بهشیه گیلاس شراب خیام دادم ساخت ایتالیا است باورش نمیشود این شراب ایتالیایی اسمش خیام باشه پشکفتم گفتم پدر رو دست کم نگیر پدن پدر دون دکتاتوریون هر کاری بخاط میکنه حالا هم شراب تو بخورو برا بعد از تو اینو با وقت ملاقات گرفته گفته, گفته کار واجب دارم خسته شدم از بس مشکلات اینا رو حل کردم که از دستشون راحت میشم پسر، به گیلاس ویسکی منو پر از یخ کن بذار جلوم با دو تا ندادم از فاویزونت آویزونت کنم